<تصفيق> گل های خراسان،, خراسان آیا شما میخواید که رادیو صدای خلافت را از بر ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیتی. بچه که دختر که سطری میکنی خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعا یاد داری؟ دعای نم خوردن دعای سخو خیستن دعای خو کردن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 با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است دیجه بمبوری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزار رو مشنوی نمیترسی؟ نه الحمدلله. همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند انشاءالله دل گفته های دل دل اطفال دل دل خراسان, خراسان. دوشنبه شمب شبها از رادیو صدای خلافت, خلافت من یک انسان گمراه بودم تمام لحظاتم را به حدس می نمودم و دوستان داشتم که آنها هم جاهل بودند و مرا به مجالس فحشا و منکرات میکشندند و متاسفانه می نوشیدیم و می و من نینوازی میکردم و دوستان جاهلم مرا تشویق میکردند و پدر و مادرم نیز مرا تشویق می نمودند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 یکبار الله رحیم در سرزمین خراسان نظام خلافت را حاکم ساخت و آمدم به سرزمین خلافت با شیران خلافت اسلامی اکجا شدم و حال در سنگرهای داغ از گرد و غبار آوازهای صلاحای سقیله لذت میبرم و از آن بوی جنت را احساس میکنم و حال زندگی خود راضی استم سلاما بلغوه حضرة المولى الإمام ورفعوا كارجستو جوي حك دولة الإسلام أمن وسلاما أشرق النصر على كل البرية وانتشأ أهل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. شنونده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی ما ابو مسلم خراسانی و برادر گرامی ما عبدالرحمن روحانی در خدمت شما قرار در برنامه در جستجوی حق امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید ما هم برنامه خود به شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت سلام تقدیم میکنم السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی، توصیه من برای شما این است که هر کدام شما در خانه های تان یک کتاب سیرت را برای اطفال و خانواده خود بیان کنید تا از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام آگاه شوید. چرا که سیرت پیامبر و صحابه برای ما الگو و نمونه است ما باید بدانیم که صحابه چرا قربانی های زیادی دادند چرا خاطر اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند و چرا با دشمنان دین الله جنگیدند؟ و اینشالله که اگر شما سیرتی صحاوه را مطالعه بکنید باز حقانیت خلافت اسلامی برای تان آشکار خواهد شد. خب روحانی صاحب حال از زبان یکی از برادران مجاهد مشنیم که از دارالکفر به دارالاسلام هجرت کرده و در رابطه به آمدنشان به خلافت اسلامی چی گفتنی ها دارن؟ نرى هذا ولا ذاكى وذكى برأينا دولة الحاق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكى مدة الأيدي تبيعك إماما مدة إماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله برادر محترم میشه که شما خدا بر ما مرفی کنین چرا نمیشه اسم عمر است م از ولایت میدانوردک هستم ماشاءالله برادر خودت تحصیل کردی درس خاندی یا خیر؟ بله، کمتون درس خواندی م فارغ سنف دوازد سمک د مکاطب کابل م درس خواندیم و چهار سال م هم مدرسه خواندیم و پهلوش بعضې درسها عقیدتی و فکری بوده که ما دو اشتراک کردیم و رفتیم و درس خواندیم پشت استادهای بزرگ دکاول و ورای تو ماشاءالله برادر شما ما گفته میتونیم که چی باعث شد که آمدین به خلافت اسلامی و نظامای کفری را ترک کرده از اون آمدین به خلافت اسلامی خلافات و چتیاتی که در روی کره زمین دید میشه و بعد نشارات پخش میشد طرف و اینا همه خستهکن شد و برعرا حقیقت سربراه شد در طرف مجاهدین خلافت اسلامی از طرف مجاهدینی که در خراسان و شام وجود دارند و کسانی که هاره مجاهدین ما ما در کنار خود داریم در ولایت خود ما در این که پایتخت خود ما در ولایت‌های زیبا سرشار جلالباد در خراسان که موجود هستند انشالا این ها همشان آمدن که اسلام را به همه برسانند و تدبیق اسلام در نظام چونی خرافات که وجود دارد به همه برسد و این قانون اسلام و تدبیق قانون اسلام به دست همه جهانان هست و جهانان باید قوت خود و ارزش خوده برای الله ثابت کنند نه برای کسانی که نمیدونن که به چی کارها رو کردن و از چی کارها باید کنارگیری کنند اینها ها همشان جوان که هستند اینجا که آمدن به خراسان که اشتراک کردن او همشان محسلین هستند اینجنره ها هستند و کسانی هستند که جهان دیده و مردم دیده هستند و زحمت کشیدن و علم خود به برد اردش رساندن و یعنی اردش علم خود به همه نشان دادن و بالاخره به اینجا آمدن و انشالله و این تطبیق اسلام و قانون اسلام به هم میرسه و این به دست همه میشند نه به کسایی که خود کنار میگرند و نمیان اینجا و خراسان یعنی پیشرفت و ترقی اسلام به هم نمیرسانند و انشالله اگر جانا خواسته باشند میتونن بیاین و از نزدیک ببینند خراسان ماشاءالله آزاد است یعنی قید نیست مثل قانون شرک و خرافاتی که در پایتخت وجود دارد ما می توانند که خرافات از بین برند و جوانان ما ما شاء الله با استعداد هستند و این استعداد دارند که منافقین و مرتدین از این زمین گم کنند و اسلام را پایدار بسازند و برای همه نشان دهند که یعنی قانون شریعت اسلام چقدر آزاد است چقدر آرام هست و می از اسلام خوب برای همه نشان دهند که یعنی اسلام چیزی نیست که زندان ما اسلام چیزی نیست که قد گیری باشند اسلام برای خواهر و برای برادران ما آزاد و مکانهای زیبا و صرف راق ساق در مکانهای مکاتب و مدارس و آنها باید بیان و برای همه خوب برادر شما در زیر نظام های زندگی میکردین در اونجا اکثرن قوم پرستی زبان پرستی و مختلف تعصبات بود شما چطور در خلافت سلامی می یعنی تعصبات زبانی قومی نژادی و سمتی می میبینین یا خیر برای ما دونه که زندگی میکردیم در خرافات و بدعتای مختلف و ما دین تعریف کردن یا به حساب ندانستن این همه ما تلاش ما و خواست ما طرف علی بود و خواست الله بود که ما کوشش کردیم گشتیم با استاد آشنا شدیم با جای مختلف آشنا و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و براخره تا که دانستیم به توفیق الله تعالی ما به حقیقت رسیدیم و انشالله اقیقت به همه خواهد رسید و اقیقت بود که ما دانستیم و در پالوی خرافات در پالوی بدعت که ما بودیم واقعا خستهکنود برای ما واقعا زندگی رو نمی فامیدیم که زندگی به این نوع اگر باشه خیلی خلاف سنت است خلاف دین هست و الله از ما ناراز بود واقعا حالا که ما کوشش کردیم آمدیم همه چیز دانستیم که یعنی حقیقت چی است و اسلام چیگونه یک دین زیبا هست و برای همه چیگونه می تانه بلندتر و در هر جا باشه ما انشالله برای همه جهان میگیم که بگردین و تحقیق کنیم و بیاین به این جا و انشالله دین زیبا هست و از جاهای مکان یا مدارس بزرگ ایجاد میشه و برای ما قصه که شما دونجه هستیم در خرافات زنگی میکنین از برای این و نمیتاین با او خرافات و به او بیداد با قصه که شما غلامی را میکنین اونها ها خودشان مرتدین و منافقین هستن و اینشالله اگر شما بخواین بیاین در اینجا ما میتاری اون مرتدین و منافقین کسیله از خاک بیرون کنیم و انشالله دین اسلام برای همه انشالله پادار خواهد بود و دین بدعتی و شرات کثیف چیزا نمیتونه پادار باشه دینی که پادار است او ایمان و عقیده درست است بله برادر محترم بعضی جوان ها تحت تاثیر رسانه های غربی رفتن و اونا اما تبلیغات میکنند میگن میکنن که دولت اسلامی سر مردم میبره و یا بعضی توهمتو میزنن سر دولت اسلامی میگن که اینا یک طفله پاره کردن، و یا زناره مثلا نعوذ بالله به عزت کردن و یا حق مردم خوردن خب بسیار جوانا هم شبهات برشان پیدا شده و مانع آمدنشان به خلافت اسلامی شده شما شتو ام شبهات بر شما هم پیدا شده بود خیر برای بله اون رسسانهای است که حساب میخواند که خودشان پیشررف کنن و مانعشون است که کسایی که حقیقت پخش میکنن و میخواند که انتشارات خود مردم نشان بن و بالای حقیقت یعنی حقیقت بپوشانند و مردم از حقیقت دور نگاه کنن و جونین صحبت های نشر میکنن و می که اون خرافات و اون چارتیات دهتی و کسیف خود به مردم نشان بند و حقیقت بپوشانند و به مرای مجاهدینی که واقعا برای الله برند راه الله براندن و میخواهند که دین الله را برای هم برسانن بالا اون ها تهمت بسم میکنن میان که زحم میکنن یا چی میکنن اونها کسانی که هستند که, که ای هستن این که زخم میشن انشاالله اگرجانان رو خواست باشن تحقیقند بگردن ب چون این حقیقت میرسند که چه کسایی زحم میشه و چه کس های ماندنین این دیین برای کسایی نیست که اینجا بگرن که حالا دی هست زحم میشه کسایی ای اینجا به گناه میدن نه او کسایین که در اینجاشریر کردن خرافات گدارن و دید توحین همه المجاهدین بد گفتن و رد گفتن و برای مجاهدین تهمت بستن میکنن و این خیلی چیز هست که انشالله اگر کسای این چیزین این کارا قبول میکنن که حساب دین واقع سخت است اونها بالا رفتنی هستند و جواب خواهد دادن بناهن باید کوشش کنن که بیان و قط بفهمان و بدانن و انشالله اونا اونها هم به کسای جزای خواهد دادن روی فهم خودشان و اگر خواسته واشن این جرات کنند و بچونین چنین های کسیف لعنتی اعتبار نکنند رساله که سالحا سالحا جوانا را بیرا کردند جوانان عزیز ما را از جوانی و از قانون اسلام و شریعت اسلام از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نگه داشتند و او رساله ها شکست می با جوانان معهد و با جوانان که زحمت کشدند انشاءالله گفتنی و به همه جوانانی است که اینجا بیان به خراسانی بیان ان خلافت اینجا آمده و این خلافت میتونه باعث ترقی و پیشرفت خوب برای همه جوان ها در صد و صد شوه و این مرتدین انشالله شکست می و اگر خواست جوان ها باشه برادر بسیار از جوان ها فعلا نمی بهانه را گرفتن میگن که ما میدونیم که خلافت اسلامی بر حق است ولی ما به خاطر از این نمییم که ما فعلا تحصیل میکنیم و یا مدرسه می یا حفظ میکنیم یا دوره حدیث داریم اما تباز بهانه ها را بر خود گرفته خلق الحمدلله اینجا و نصاب خلافت اسلامی نصابی است که می که انشالله تمام جهانش چلنج بده. با مانند از یه نصاب در روی جهان مت نصاب نیست انشالله شاء الله همه چیز اینجا است مدارس است و حلقات درسی هم است بر جوانان زمینه تحصیل مساعد باز همینا بهانه می کنند که ما وجا تحصیل میکنیم یا در کشورهای دور یا در سعودی وجا دیگه ما تحصیل میکنیم و فراغت حاصل میکنیم باز شما چی پیام داری جوانان که واقعا زحمت میکشند و برای خود میاند علم بیاموزند و دانش رو بالا برند برای اونها در خراسان مکان مکانها و استادان با تجربه با فکر بالا با عقیده بالا و اونها کسانی هستند که در کشورهای بیرون از افغانستان دست خواندن و تحصیل کردند و با عقیده زیبایشان اعمدند و با ما هستند در این نزدیک ما هستند اونها کسانی هستند که دکتورا دارند یعنی از علم بالای برخوردراستان جانان نباید فکر کنند که با به کشورهای خارج میریم بس سفر میکنیم ما اونجا میریم یا حساب تحصیل میکنیم دکترا میگیریم لسانس میگیریم وجوانان نباید با این فکر باشند در فکر باشند که واقعا انسان ها روی زمین که هستند یا فکر میکنند که همه چیز در خارج است یا حساب مثلا همه جوانان افغانستان است نه در افغانستان هستند که در خارج درس میتند در اینجا آمدند در خراسان آمدند خراسان جای نیست که حساب جای تنگ یزدانی باشد نه جایی است که برای ترقی و پیشرفت همین استادای خود ما هستند اونها تحصیل زحمت کشیدن و حالا با ما آمدند در خراسان هستند و جانان نباید دل بزنند و فکر نکنند تحقیق کنند و خوب تحقیق کنن رسانه های چتیات و با گزارش که پخش می چ از یا از های کثیف لعنتی و وان فکر نکنند عام باشن و یعنی دقیق فکر کنند که چون این کاری که به افغانستان روان است او چی کاری است دقیق کار چی است و خرافات چی است ای است هم مد بدانن و از قران و اسن صحبت کنن از چیزای دنیایی. انشاءالله دین دینی هست که برای همه انشاءالله همه چیز ثابت خواهد کرد و دین پایداری هست. این دین تا آخره پایدار خواهد ماند. با می جانند که می که اینجا بیان پایدار خواهد ماند. جزا الله خیر. ذاك لن نرى هذا ولا ذاك وذاك برئينا دولة الحق هناك يا ابا بكر الحسيني فهكا مدت الایدی تو, اماما. مدت تو, اماما. مدت تو اماما خوب برادران گرامی، شنیدید برادری که به دار اسلام هجرت کرده بود احساس خوبی از خلافت اسلامی داشت بله واقعا باید تمام برادران رای هجرت پیش گیرند و با کاروان خلافت اسلامی بپیواندند و مانند همین برادر حیات خود را زیر سایه نظام اسلامی سپری کنند خوب برادر گرامی در دقایق اخیر برنامه قرار داریم بله ناگزیر از حضور شنوندگان برنامه در جستجوی حق مرخص میشیم تا برنامه آینده الله حافظتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلغوا منا أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلامة طاغوت شيناسي طاغوت شيناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لا انفصام والله سميع عليم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 هو میکنه که برله تعالی ما ایمان داریم به طریید ایمان داریم لکن قلبان تاغوت رو دوست داشته باشد یا زبانان، این تغوت تاریخ می باشد یا همملا از تاغوط اطاعت می باشد یا از اونله این نوااپی کرد از این نواوقی این برنامه را شنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید <تصفيق> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد شنو من راديو صداي خلافات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران ومومن خواستم بخاطر از بین بردن بعض الشبهات در برنامه مشبه خط با استاد ياسر رحمه الله صحبت هاي داشته باشيم استاد محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم، نظریت مردم در مورد جنگ کنونی که بین جهان اسلام و کفر است مختلف بدن نظر شما در رابطه چی می باشد؟ الحمدللہ رب العالمین و سرات و سلام على سید المسلین و على آله و اصحابه اجمعین رب شرحل صدری و یفرل عمری و حلوقتت من نسانی افتوق از شما و همکرانتن تشکر میکنم که شما به من فرصت رو میتین که بتانم از خلال استودیو شما با برادران فرس زبان خود چند در موضوعات جهادی صحبت کنم. جنگ فیری که بین اسلام و کفر تحت عنوان جنگ برزدی توریزم واقع است. این جنگ در حقیقت جنگ اسلام و کفر است. دشکر صدیب با تمام کشورهای صدیبیشان، مشترکانه، متحدانه، وزید اسلام جنگ شروع کردن این جنگ تا حال مردم جنگ سلیبی نمی داند می با از لحاظ معلوماتی که در دسترس شان از خلال مطبعات موجود و جاری قرار دارد صحبت کنم اول، این جنگ ابتداعا بشت در بیانی خود به نام یاد کرد به نام جنگ های سلیبی بش در بیانه اولی که بسیار بر از نشاط معلوم می شد با احساسات بسار جنگی ایر بابیسار روش به با دنیا ایران کرد که جنگ ما خاطر دین است ای جنگ های و حتی بیادبی کرده گفت که الله به ما امر میکنه که ما هی جنگ کنیم بیانیه های بوش در ابتدا از ای جنگ دلیل کافی است که ای جنگ جنگ سلیبی جنگ بزرد اسلام است نه جنگ بزرد توریز دلیل دوم اگر ای جنگ جنگ صلیبی نمی بود ضرورت با لشکرکشی مشترکانی کشورهای اروپایی چی بود؟ که حتی کشورای ناتو هم کافی نبود، حما اروپا را جمع کرد، واس کشورای اروپایی هم کافی نبود، از بقایای دولتای کمونیست هم با هم یک جای کرد که فعلا تعدادشان به حدود شست دولت رسیده که در جنگ با هم شریکان جنگ کرده ضرورت چی بود که 60 ملک برای جنگ به خاطر یک کشور بیچاره و کوچک جمع شود؟ اگر جنگ مقصدش مشارکت در یک جنگ مقدس نمی‌بود، ضرورت چی بود که یک کشور حتی یک فرد از קר جنگ روان میکنه که دی جنگ شریک شود؟ یک کشور یک یک اسکر خود را که در جنگ کشورهای کشورهای دشای تلاف با افغانستان یک, مشارکت از یک اسکر مشارکت با یک عسكر در این لشکر منایش کمک اسکری نیست منایش مشارکت در یک جنگ مقدس است که به خاطر ثواب میخوان که ثواب به جنگ معروم نماند دلیل سوم مثل که در جنگ های صلیبی تاریخی پادشاهای فرانسه لشکر همه اروپا را با هم یک جای ساخته به طرف بیت المقدس حرکت میکرد اما به هم، مشکل همه اروپا با تمام لشکر های خرد و کوچک جنگ جنگ کرد. این یک ضرورت سیاسی بود که همه کشورهای اروپایی دشمنی افغانستان و مسلمانان را بگیرد و نه یک ضرورت نظامی بود و نه یک دشمنی سیاسی اقتصادی بود که هم مردم در جنگ اشتراک کرد. اگر نقطه مشترک همه لشکر های کشور در افغانستان مشارکت در سلیب نباشد پس چرا قدر یک لشکر یک وسیع وسیع بنا ده به خاطر یک جنگ کوچک گرفتار جنگ آغازش بایکا شد ضرورت مشارکت اروپا چی بود در این جنگ؟ نقطه دومی بود اگر اسامه مش ده بود ده افغانستان دشمنیش با آمریکا بود اگر از 11 سپتامبر عامل جنگ بود واقعیش در آمریکا بود ضرورت به ناروی و سویدن و فنلند چی بود که در جنگ اشتراک کنه؟ ضرورت به پولند و چکوسلوواکی چی بود که در جنگ اشتراک کنه؟ ازی از یامان مشخصه که یک جنگ مشترک همه کشورهای صلیب بود که برزید اسلام ای جنگ شروعت گرفت دلیل دیگه که به این باید اشاره شود از لحاظ سیاست کلیساها کاتولیک و, و پروتستان ها از لحاظ افکار و مبادی دین مسیحیت منحرف شده پاپ نباید در سیاست صحبت کنه پاپ نباید در جنگ ها اشتراک کنه چرا جنگ موجودی امریکا برزید افغانستان و عراق با مبارکه پاپشان شروع شد چرا پاپ دری جنگ گرفت چرا پاپ دری جنگ کمک کرد چرا پاپ بو در جنگش برزید افغانستان تایید کرد دلیل دیگهیای بود که همزمان که جنگ شروع میشه بزدی افغانستان و بزدی ضد عراق جنگ شروع میشه همزمان کاریکاتور رسول صلی الله عه نشر میشه همزمان بزدی قرآن حوادث توهین قرآن به میان همزمان ازی برزدی اسلام که یک دین توریزم است در فلم ها به این ای توهین صورت می نشر فلمی که در حال این صورت میگیره گیره که در, در دنمارک صورت می گیره های پاپ در حق رسول صلی الله علیه ووسلم توهین به پیغمبر اما اگر اگر اگر مناسبت با جنگ صلیبی نداشت مناسبتی کاریکاتورها و این تعرض‌های مطباتی با سپتامبر چی بود از این لحاظ باز در جنگ چرا همه اموالی آمریکا در پهلوی امریکا قرار میکرد؟ و امریکا همه مردم تهدید میکنه که یا با ما باشد یا بر ضد ما هیچ کسی اجازه نمیته که داری جنگ به طرف بمانه لشکرکشی بزرگ اگر به اسلام نبود دیگر دیگه چه چه هدف داشت دلیل دیگه ای که این جنگ به اسلام است اگر اسلام هدف نمی،, نمی بود چرا در هر جای مردم متدعین و دیندار مورد حجومی از جنگ قرار گرفته هدف و نشانه است بر خاطر جنگ شما و مطبوعات دنیا شاهد از حال هستید که امور ریش و لونگی و دوستاره که در مغرب به زندان در, در زنجیرها ها بسته میشه امور لونگی و امور است که در اندونیسیا به جرم تروریزم اعدام میشه و امور شلنگی است که در افغانستان و در راه کشته میشه به جرم اگر این جنگ جنگ مذهبی نباشه پس چرا در همه جای هدف از جنگ مردم متدین است اگر ای جنگ جنگ برزيد اسلام نباشه، چرا هدف از ای جنگ مدارس دینی و نصاب تعلیمی از ناس اگر این جنگ یک جنگ فکری و مذهبی نمی بود چرا امریکا بالای کشورهای دولتی و, و کشورهای خلیج فشار میاره که موضوعات مضمون دینی را و مضامین مفاهیم جهادی را که فهم صحیح اسلام از نصاب تعلیمی بکشد چرا در نصاب تعلیمی مداخله میکنه اگر ای جنگ جنگ مذهبی نمی بود چرا امریکا به پاکستان اجازه تا که مدرسه دینی را در در, در اسلامآباد بمبارد کنه جنگ ار اسلام اس پیغمبر اسلام دری جنگ هدف حمله دشمن قرار گرفت قرآن مسلمان دری جنگ حمله دشمن قرار گرفت مدرسه مسلمانها هدف دشمن قرار گرفت مسجد ما هدف دشمن قرار گرفت حتی قبل ایمه در عراق و قبر اولیای ما در عراق هدف دشمن امریکا قرار گرفت این همه نشانه واقعی بر ازیس که ای نمایندگی از یک حقد دفین و از یکینه یک و دشمنی بسیار عمیق نمایندگی میکنه که بزر اسلام قرار داره. چرا امروز اروپا اگر جنگ جنگ صلیبی نباشه؟ یک زن مسلمانی که در اروپا یک دو بلست دسمال برای سر خود میندازه او را بنامه متشدد داد پسند. او را کش میکنه با توریست ها و بلقایده با پیمان. چرا امروز مسئله هجاب در ترکیه و مسئله هجاب در اروپا موارد سیاست اروپایی ها و لشکرای نتو قرار می گیره. وقتی که حجاب ما مورد هجوم قرار می افت عفت ما مورد هجوم قرار می عقیده ما مورد هجوم قرار می بیت المقدس ما مورد هجوم قرار می هم زمان که امریکای اسلام در تمام اکناف اسلام جنگ میکنه و بمبارد میکنه همزمان اسرائیلی ها در بیت المقدس مغربی در زیر مسجد اقصا به حفریات ادامه می فی الحال در زیر مسجد اقصا در زیر زمین حفریات غیر قانونی در زیر مسجد اقصا که یهودا در ادامه می که حیکل می و می بیت المقدس ویران شود و مقدسات مسلمان ها در تصرف یهودا هم که جنگ در افغانستان و در عراق جاری است همزمان خون مسلمان ها در مسجد اقصا و در, در, در نماز جمعه مسجد الاقصی همزمان هم که در روکمن بمبارد میشه در افغانستان بمبارد میشه هم زمان در غزه مردم با محاصره قصاری رو بروس و خون شهیدای ما سرکهای غزه رنگین ساخته چی مناسبت هست که یک جنگ که هم غزه را هم بیت المقدس هم بغداد که دار خلافت بود با کابل بسته میکنه غیر از که جنگ کفر اسلام باشه هیچ تعبیر و توجیه بر ازی نداره این جنگال مطبوعات غربی به اشاره میکنه که کوشش میکنن کاله از لحاظ این حوار ادیان بخاین که های خود بو و این نشان بدن که ما دشمنی های و مذاهب نداریم مگر حالی رسوایی آمریکا و ها بیشتر از شده چرا اینا در افغانستانی که در اونجا در جای کلیسا را آباد میکنن که در اونجا یک مسیحی, مسیحی ساکن وطن در اونجا وجود نداره و اینا کلیسا را آباد میکنن چرا در جای بر نشر صلیب و انجیل مبالغ بالاتری گزافر مصرف میکنن که در اونجا اصلا کلیسا وجود دارن نه مسیحا از این معلوم میشه که جنگ به خاطر صلیب است و جنگ به خاطر نشر مسیحیت است و جنگ به خاطر وایرا کردن بیت المقدس است و جنگ جنگ انتقام بیت المقدس است و مهم ایر جنگ جنگ بیت المقدس میداد تقبلہ الله مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما